حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردا یه روزه به دست بلک هوا دارته چون بلدی بخندی با چشم دل ببازم با اش دل ببندی اجوا که دلم سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا پشواک قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم خوبی شما خوبی خوشین سلامتید حالا احوالتون چطوره؟ اینجا رادیو پس فردایی 972 با ما باشید فیلم خوبین خوشین چیکارا میکنین چه خبره پساورجام خوش میگذره این هیئت چینی که باری رئیس جمهورشون اومده بودن برگشتن نرفتن انو ای بابا جزم. کل پولای بلوکه شده مون که آزاد شد که فقط دیگه خرج خورد و خوراک و هتل و اینا میشه که ماشاءالله 600 نفر هم هستن حالا اب نداره دیگه مهمون حبیب خدا دیگه چینی باشه به حال حتی اگه چینی هم باشه حالا حبیب خدا دیگه همینجوری کنجکا بودیم ببینیم برگشتن یا نه بریم سر بحث خودمون امروز ما می‌خوایم در مورد اثرات پسابرجام بر وضعیت حقوق بشر تو ایران صحبت کنیم ببینیم این آشتیکنون تاریخی با غرب آیا باعث میشه که یه مقدار جمهوری اسلامی متمدنانه تر با مردمونش برخورد کنه یا قرار اوضاع بدتر هم بشه اینه که در ابتدای برنامه سلام و عرض عدب داریم خدمت آیت الله صادق عاملی لاریجانی که در همین مدتی که بر مسند قوه قضاییه نشستن برحال ها با این حقوق بشر زدن و با انجام حرکات و اکروباتیک و محیر الاغول دنیا رو متحیر کردن و البته جاداره یادیم بکنیم از برادر محترمشون محمد جواد که توی همون قوهی که داداش صادق رئیسشه ایشون ریاست پنل حقوق بشر رو به دارن یعنی واقعا باید نشست و دید که چه میکنن این دوتا داداش و حقوق بشر در دوران پسابر جا برو بریم آقا. خانم آقایون میدونید که هنر نزد ایرانیان است و بس در همین راست اقبارها گفتیم دیم این مسئلهی که همه میدونیم دیم در همین راستا بعضی وقتا آدمی چیزایی میشنوه از بعضی شیرینکاری های بعضی از هموطنان عزیزمون که فکش میفته رسمن داستان اینه که یه هموطنی تو کالیفرنیای آمریکا رفته صاحب یه داروخانه رو دزیده برده تو بیابون بعد ازش درخواست پول کرده و طرف هم حالا یا نداشته یا نداده این هموطن عجیز نه هم نگذاشته بعد از کلی شکنجه زده نقطه یه حساس یعنی هم اسباب اساسیه اون بند خدا داروخانه یه رو از شدت بیعصابی بوریده از ته بوریده متواری شده و خلاصه ردشو کجایی رفتن ردشو اینجا توی جمهوری چک دو همین کشوری که ما هستیم کنم توی تویرا بوده ردشو اینجا گرفتن و بازداشت شده و فرستادن آمریکا حالا همه اینا یه طرف اینو داشته باشین رفیقمون تازه همین دو سه روزه پیش از یک زندان خفن ایالتی آمریکا فرارم کرده یعنی مدیونی اگه فکر کنید من دارم براتون فیلم و سریال تعریف میکنم عین واقعیت این ماجره هنوز دستگیر شون البته بله همچین همبد ننی خواستم بگیم داریم ما. حالا هی میریم این ور اون ور پوز میدیم میگیم نصف ناسا ایرانی هن و ما ایرانی ها همه پروفسوری و دانشمندیم و اینا و اینجوری و اینا اشتباه نمی کنیم و اینا هم درسته خب این هم مد نظر داشته باشیم چون طرف خیلی هم خوف و خفنه تو کار بریدن هم هست گفتم دیگه عباستون باشیم من میخوام ببینم یعنی صدا مو خار داره پخش نمی کنید <تصفح> بابا خار چیه صدای شما مثل برگ گله ماشاءالله چرا پخش نکنید پخش کردیم دیگه حرف تو به حرفی نمیزنید خب واخه مردم اعصاب ندارن عجب اوه oh yes. و اما ماشاءالله هزار ماشاءالله نیروی انتظامی مملکت ما هر چقدر که در زمینه مبارزه با اون ریشه های اصلی ورود مواد مخدر به کشور کار خاصیت دستش بر نمیاد. اما در زمینه جمع جور کردن این خورده فروش ها و متادای خیابونی موفقه کلا هرچی شما دردسر گرفتن کمتر باشه عزیزان پلیس برای گرفتن شما خطری کمتری را متحمل بشن شانس بازداشت بیشتره. الان گوش کنید اینا کسایین که در یکی از این عملیات های پلیس دستگیر شدن دارن میگن چیا داشتن که ازشون گرفتن گوش کنی سوخته تریاک از من حشیش رفت چقدر 20 گرم 25 گرم تریاک قربان 15 گرم تریاک روشنده بودی نه امانتی گذاشته بودن پیشم البته این دوست امانتدار آخریمون استثنا بودا دوشن ما وزن موادش زیاد بود ولی بقیه در حد خیلی خیلی لایت مجرم بودن. باز بعضی هم ظاهرا به خاطر سوء تفاهم دستگیر شده بودن، اینا اینجوری. آقا ما کفباشم اومدیم اینجا کفش دوره، کفش امانته. کف دیدم هم گرفتن، منم گرفتن، آوردن. بله، چی بگم والدی کلاً ضمن عرض خشنبواشید به دلاوران پلیس خدمتتون یادآوری میکنیم که طبق آماری که خودتون منتشر کردین، سالی فقط 62 تن شیشه و فقط 450 تن تریاک تو کل ایران مصرف میشه بچه مثلا تو سال 93 کل مواد مخدر از جمله تریاک و شیشه که گفتیم به اضافه هروئین و کراک و انواع روانگردان و کوکائین و اسید و یا هم همه همه هم الستی و مورفین و ترامادل و غیره و زاله کائنا رو تونستیم بگیرین حد اکثر 555 تن بوده تو آمارای خودتون حالا هی شما برید هی مصرف کننده های دربا داغونو بگیرید ببرید دو ماهی جا نگه دارید باز دلشون کنید بیان, بیان بیرون دلتونم خوش باشه که دارید با مواد مخدر مبارزه میکنید آفرین به شما چش نخورید یه وقت به خدا جون سلام من از کلگری کانادا تماس میگیرم با. هوا مثبت 15 درجه صاف آفتاب گرم اینجوری که میگن کانادا کانادا شما فکر میکنید ما اونور سرمای و دیگه یعنی هیچی نزم یه نقطه‌ای هم داره مثل فورت مک منفی 35 درجه با وینشیل منفی 42 حال شده برین قربونت بله حالا اونجایی که شما اینکه که گفتی 15 درجه بالای صفر آفتاب گرم داره اینا اسمش چی بود حالا کلگ... کالگری کل... کال کال کال چی بود اسمش؟ تاگلاری کالگری چی تو, تو ایتالیا است فکر بابا کانادا میگه کانادا بود. ایتالیا چیه یارو میگه <تصفيق> کانادا زمین میگه ایتالیا است حالا به هر حال اون وقت چیه یعنی ایتالیا بود یا کانادا, کانادا بود. بود کانادا بلی بود. بلی آره تو ایتالیا هم است کالگری بله. واقعا من... من نمیدونم واقعا اسم برازنده ایه. همون اون که توی کانادا اولش احتمالاً حالیگیری بوده بعد کم کم به مرور تغییر کرده شده مثلا کال کالگیری به جای هالیگیری شده حالا نمیدونم دیگه به هر حال خوش بگذره به هر حال دوستان به جای ما عیب نداره دیگه همه دارن همه جای دنیا از سرما می‌لرزن و اینجوریه دیگه چیکارش کنی شما هم این مدلی توش شد شما خواگم اما دیروز از برف و بوران شرق امریکا گفتیم امروز میخوایم چند تا خبر برفی سنگین از کشور خودمون بدیم البته همین الان هم بیشتر مناطق شمال غربی و کشور سفید پوش هستند ولی سورپرایز اصلی مربوط به دو سه روز آینده است که قرار یه برف مشتی بیاد اگه گفتین کجا تهران نه حالا شاید شمال تهران اول روز چهارشنبه پنجشنبه یه نم به برفی بشینه ولی اون برف خوبه قرار کمی بالاتر سمت گیلان بیاد و توی رشت ارتفاع برف به 6 سانت هم میرسه که خوب یعنی تو زانو میرین تو برف گفته میشه که در برخی مناطق اطرافرش حتی ممکن ارتفاع برف به یک متر هم برسه. با به جان خودم دروغم چیه؟ بابا میگن این طوریه دیگه اینه که از الان شما خودتون آماده کنیم که چهارشنبه پنجشنبه که مالیستیم اضافه قافلگیر نشین و موقع آدم برفی ساختن جا ما رو خالیکن موقع آدم برفی ساختن و موقع پارو کردن برف میخواد جای ما رو خالی کنیم اون موقع ما جاتونو این برخاللی بله. امیده اولومی زمستون تو رو یادمم میاره میایی تو زهنم دوباره یه حسه موندگاره او او او قلب من به دوری تادن نداره بی تو داره کم میاره چون هنوزم Sit down is ما بریم سراغ برنامه امروزمون امروز دو به 5 بهمن 1394 برنامه 972 راژیو پسفردامی سراغ پسا برجام و حقوق بشر ترس و حراس را از من بگیر برجام را نه شما شماره 972 ای کسانی که ایمان آورده اید بدانید و آگاه باشید که درست از کشورهای غربی پس از توافق هستهی و در دوران برجام دیگر مثل سابق به نقض حقوق بشر در ایران حساس نخواهند بود لکن شما خودتان جنبه داشته باشید و مراعات کنید و در اعدام و زندان و حسر و حقوق اقلیت و محدود کردن آزادی ها زیاد روی نکنید که اگر چنین کردید از خیلی نامردها و ضعیف کشندگانید امزا از وضعیت حقوق بشر در دوران پسا برجام به شدت نگران بوده ها و دستشون البته به جایی بند نبوده های رادیو پس فر لا لا تو هم که فقط بگو شماره ماست ایمیل ماست خب این دوخ چه گناهی کرده مگه بگی شماره ما اصل ایمیل ما هستند لطفا لطفاً ای بابا هیچ جایی چیزی خواستم این گیری بهت داده باشه ای نداره بابا ای نداره شما همین دم رفتنی به ما گیر بده تا الان 970 و چند تا 972 دو تا برنامه اجرا کردیم گفتیم ماست دیگه الان این 22 تا 28 تایی واقعی مونده راه حالا میگیم همون ماست دوباره والا ما چه لب وومی ما چه بابا رفت اگر نه بودی بگو بابا هفته از شما خواستیم به ما بگین با لغو تحریم ها و آغاز دوران پسابرجام و نزدیک شدن ایران و غرب چه تغییراتی توی زندگی شما حاصل میشه حالا این تغییرات میتونه توی زمینه اقتصادی باشه برگشتن قیمت‌ها به دوران ماقبل تحریم‌ها باشه یا میتونه باعث گوشهایش یا انسداد تو فاز سیاسی جامعه باشه فکر میکنین در این دوران ممکنه چشممون به جمال مکدونالد توی ایران روشن بشه یا نمایندگی اپل تصوری از نشستن توی بوینگی که هنوز مشمای سندلی هاشو نکندن دارین آنها راستی دیروز گفتیم KFC KFC چیز شده ها پولوم شد KFC هنوز الان همچنان نمیده چیزی یعنی هیچ ساندویچی هیچ چیکنی هیچ ای هیچ سخاری اینا نداره الان بستسترش به ما اینجوری گفتن گفتن که الان فعلا اول یه بار فک پولوم شده بود بل میسکی دوباره پولوم شده حالا دیگه در هر حال این هفته به ما از ذهنیت و توقعات پس برجام میتون بگین تا ببینیم واقعا این همه زحمت و دردسر این برجام و این حرفا ارزششو داشت یا نه. عصارات برجام، به قولون رفیقمون دیروز فرجام تو ژاپن اینه که بنزین 160 اینی یعنی در عرض 7 ماه گذشته که ایران توافق کرده حدوداً به الان من دیروز زدم 103 این یعنی یکی دوده بیش درصد ارزون شده اینجا داریم، حال شدو داریم با, با. این بعد صبحونم اینجا بنزین بخوریم ارزون شده <laughs> حال میکنیم آقا نوشه جونتون نوشه خوشحالیم آقا انقدر بنزین ارزش شده که توی جاپن چنبنده همون به بنزین خاری رو آوردن بقی عوضتون باشه پشت بندش که بنزین رو خوردید و هبست نکنی یه نقصیگار روشن کنی بکشی دیگه ما بگیم دیگه بدونی وظیفه ما پشتار بدیم مریم توی اینستاگرام گفته که یکی از اثرات منفی برداشتن تحریم صدور مجووز اوباما برای فروش هواپیما به ایران بود لامستب هیجان مسافرت با هواپیما رو از بین برد حالا من نمیده تا این هواپیما را قرار داد ببندن ما شنیدیم خیلی که قرار هواپیما بقرارم تعداد همجوری جوری عروض فرق میکنه حالا تا یه هواپمار قرار داد ببندن بخرن پولشو بدن به ایران برسه نمیدونم سوار بخواهیم بشین یه در دوازده سالی فکرم طول میکشه تا اون موقع همچنان شما میتونی لذت و هیجان نشستن توی توپولوف و آنتونوف و اینا رو تجربه کنی و علاوه بر اون با یاد مرگ به خدا هم نزدیک بشی اینجوری خیلی بهتره اتک گفته ما تنهامل توی اینستاگرام گفته ما تنها ملتی هستیم که از برگشتن به زمان گذشته خوشحال میشیم. اتک گفته دیگه. کلا سیر تکاملی ما اینجوری بوده که حچ بر میگردیم مقب اون بهتر میشهین شما الان مقایسه کنیم با 15 سال پیش، 15 سال پیش مقایسه کنیم با زمان شاه زمان اون خدابیمر و مقایسی کنیم با دوران کووش همجوری کللا بیرون نگاه کنیم میفهمیم ما داریم خلاف جهت اتوببان میریم. و واسه اینه که دیگه فرق داریم دیگه برحال میدونیم ما فرق داریم ما اینجوریم اینیم ما حس چی الان حس خوبیه دقیقه حسابرجام یعنی آه. فهمیده موضوع برنامه, برنامه چیه خودش میفهمه موزیکای برنامه همون موزی. <تصفيق> بریم سراغ. راههای ارتباطی رادیو پس وردا پس فردا ایمیل ماست دو صف چهارصد بیست و و دو صف چهارصد بیست پنج س ماست فیس در فیسبوک گوگل پلاس ساند اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برمون کامنت بذارید تلفن های پیامگیر ما دو 420, 22, 11, 24, و 163 و و و سه و که از داخل ایران تماس میگیرند دو دویستو اگه به من یه لحظه دقت کنی با من بشینی کمی صحبت کنی میفهمی که چقدر دلم با حاته برام فرشته نجات دلم برات میزنه اونم شجور خیلی خوبه اومدی تو از راه دور کنار من که باشی خسته با من بمونی یه روز نیاد بگینم یه روز نیاد یه روز نیاد بگینم فقط با یه اشاره رفته دلم دوباره عزیزم بی جاسه آره شرم یه اشرافو که دلم برات هلاکه عزیزم بیا جاسه آها بیا جاسه آها بیا جاسه بیا جاسه ما خانم آقایان دختر خانم آقای پسرها بعد از توافق هسته‌ای و تصویب برجام معظم‌له التیماتومی به غرب داد که بالا که ما اینقدر را راه اومدیم و نرمش قهرمانانه کردیم و کلا برنامه هسته‌ای مون رو گذاشتیم کنار و اگه شما باز هم بخواید توی اوضاع داخلی ما موشته وونی کنین و تحت عناوین دیگه ای مثل همین حقوق بشر و اینا ما رو محکوم کنین و تحریم کنین و اینا کلا برجام بی برجام ها؟ جامعه جهانی البته هنوز واکنش خاصی خب به این خط و نشون نداده ولی خب خودتونه بذار جای کشورهای غربی دیگه هر چقدرم نگران وضعیت حقوق بشر تو ایران باشن خب حاضر نیستن که به خاطرش خودشون رو با شاق گاف در بندازن دوباره ایران بره به سمت هستی شدن که اینه که احتمالاً به زودی غرب بینجیه میرسه که حالا اگه 4 تا اعدام و زندانو بگیرو ببندم تو ایران اتفاق میفته اینا مسائل داخلی ایرانه. بالاخره مردم و حکومت امروز هم بزنن بابای هم در دربیارن فردا باز پای های رای با هم آشتی میکنن اصلا از قدیم گفتن جمهوری اسلامی و مردمش با هم دعوا کنن ابله ها باور کنن برای همینه که در دوران پسابرجام دیگه ما موندیم و ناپدری ناپدری بداخلاق به اسم جمهوری اسلامی که هم الان همینجوری که داره گوشه سیبیلشو میجوه و انگشتاشو شرق شروق اینجوری اینجوری میشکونه اینجوری اینجوری اینجوری میشونه میاد سمتمون دیگه فقط خدا میدونه که چه خوابی برامون دیده دلنگرانی ما از آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد موسیقی هامران موتی سلام سلام پاسیچان سلام همه گی تا خبر آو خبر مهم دارم امشب اولش که فرزان بازیگر قدیمی سینما که بعد از انقلاب اجازه فعالیت بهش داده نشد مثل خیلیا دیشب علت کولات سن در سنه هفته هایی سالگی از دنیا رفت فرزان بازیگر خیلی خوبی بود و تا سالها حضورش توی هر فیلمی باعث فروشش می شد فروزان جمعا توی پنجه و فیلم بازی کرده از جمله گنج قارون، قلندر، دشنه و دایره مینا ساخته داروش و که آخرین کار فروزان محسوب میشه کاری که دیده شده خبر بعدی رابطه با آخرین حرکت دلواپسان در کاشان فرشید برجام که انجام شدید دلواپسی از بابت چیه؟ آره دیروز فیلم یحیی سکود نکرد ساخته کاوه ابراهیم پور با حضور کارگردان و بازیگر فیلم فاطمه ها تو کاشان نمایش داشت که باز دلواپسان به صورت یا یله سینما حضور پیدا کردن و بعد از پایان جلسه با دادن پوشه رکیک به معتمدیاب بدرقش کردن رفت خونش کار به جایی رسید که سانس آخره نمایش فیلم هم تعطیل شد عجب دولت بود وقت بذره یه 400 500 تا برجام داخلی امضا کنه تا مشکل‌ها همه حل بشن خب موسیقی چه خبر کامرا موسیقی هم همونطور که دیشب گفتم ماجرای حضور سالار عقیلی تو شبکه منتو هنوز خبرساز امروز حمیدزاده نوربخش مدیر 31 و این جشنواره موسیقی فجر اعلام کرد که کمیته نظارت در این جشنواره برنامه سالار عقیلی رو حذف کرده دارجش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی هم اعتراض این نهاد سنفی رو در رابطه با این تصمیم اعلام کرده حالا باید تا جمعه منتظر بمونیم ببینیم تلویزیون چه تصمیمی می میگیره در رابطه با پخش صدای سالار عقیلی تو سریال بسیار خوب منتظر میمونیم ببینیم چی میشه ممنونم ازت کامران عزیز باید خدافزی میکنیم و یک کاری از سالار عقیلی میشنویم بسم نگارا تا فردا خدا نگهد گارا مرا از برم به فصل شکوفته مکن پرپرم همه هستی من ز عشق تو سوخت مزن تیشه بر میش و پکرم خیانه رو خط گشت رویای دل شده غرق مهرت سر و پای دل چو عاشق شدم فودم سو دلم و دلم و دلم شب را زمن ابروز از ابراز تأصف سخنگوی وزارت ارشاد به خاطر مساحبه سالار را با شبکه منوتو با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعات گذشته آغاز می نماویم بزرگترین رسطوران شرق تهران به دلیل مسائل خلاف افت عمومی و عدم رعایت مسائل شرعی و قانونی و نظر کارشناسان که بایده چی که عرق دادن دست مردم چیکار کردن مگه؟ احتمال چه قرارداد با ارزش 17 میلیون یورو بین ایران و ایتالیا در سفر رئیس جمهور ایران به ایتالیا و توصیه ناظران که واقعا وقتی پای این رقمه میاد وسط چقدر جای بابک زنجانی خالیه؟ و تایید حکم گردن زدن یک نوجوان در عربستان سعودی و نظر کارشناسان عرصه گردن زنی البته که حقوق بشر و عربستان در حد خیلی خوبی hash حالا چند تا گردن که قابلی نداره مهمترین آنو خبری ساعت گذشته را شامل این اینک مشروح خبرها با همکارم بولی بول. با سلام بر اساس تحقیقی که با حمایت مالی نهاد ریاست جمهوری روی 1280 پسر و دختر دبیرستانی 15 تا 18 ساله در مدارس شمال و جنوب تهران صورت گرفت و مشخص شد که حدود 33 درصد دانش آموزان پسر و 23 درصد دانش آموزان دختر از الکل استفاده کردند در همین رابطه یکی از کارشناسان امور نسل های سوخته کشور ضمن ابراز تصف از این آمار به خبرنگار ما گفت این مسئله نشاندهنده وجود یک شکاف نسلی بزرگ در کشور می باشد ویخود این آمار خیره کننده در حالی است که در نسل ما یکی از سرگرمی های راگج بین کودکان و نوجوانان این بود که معمولا بزرگترها وقتی عدسه می میکردند از ما میخواستند که برویم عسه آنها را پیدا کنیم. اه آه یه یه میکروفونت هلا این چیه جریانش؟ چیه؟ مگه ادسه رو میشه پیدا کرد؟ بابا اصلش چیز دیگه اصل نمیشه تو رسانه گفت ولی من ولی من نفهمیدم با این وجود منظورش اینه میذاشتنمون اون سر کار دیگه بخون بره بابای ولی اصابم نداریم شما ها بارز پوزه ادامه خبر و یفصود در نسل ما یکی از سرگرمی های رایش بین کودکان و نوجوانان این بود که معمولا بزرگترها وقتی عدسه می از ما می‌خواستند که برویم عدسه آنها را پیدا کنیم و اگر آن را پیدا نمی کردیم، به شدت مورد بازخواست و شماتت قرار می گرفتیم. پایان پایان مرشوه اخبار بله همانطور که میدانید حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان از امروز سفر اروپایی خود را به ایتالیا و فرانسه آغاز نموده است به همین مناسبت تماسی داریم با همکار گرامیم خبرنگار باید غیرمرکزی خبر تا ما را در جرگام ناخرین اخبار این سفر قرار دهند همکار گرامی صدای بندر داری چما؟ برسه برسه حلو؟ امکار ای ظاهرا اشتباه شد ببخشید ما شماری امکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر رو گرفتیم خوب خوب شما حالا خوب کاره. خوب بکردید شما ما اعملان بلندوی ایشان دستمون نده بالا پاسپورت رو سی گرفتیم یعنی ببخشید شما ببخشید من به جای ما را نمی‌شناسم ما ایت الله اندالمومن ان این از حیات زمی هم روح رئیس جمهور دیگه ایش. این این خوانگار ما کجاست حاج این چی شده ای خب... رفته این راپت این بغل برادر معصوم نجات به گفتن این روم کشیده رو تمرین بکنه اینا گوشی و بلندگرو داد دست ما, ما تماس که اگر بود دیگه پاسخگو باشیم عجبا اخو ما شما من میتونید کار گزارش گری کنید. شما خی... کاری کنید حاجب شما چاکم من مکان میتونم گزارش کاری کار داره اول کن جواب میدم دیگه عجب خیلی خوبه یه بله. کمی از حال و هوای این سفر برای ما بگید حاجب لطفا والله هوای خوبی داره این سفر اه. خیلی خوبه خیلی خیلی عالی دیداری هم آیا صورت گرفتی در این سفر یا خیر بله بله سورات گرفته سورات گرفت چرا تلگرافی جواب میدین شما خب توضیح بدین دیگه آخه این که نمیشه گزارش جواب نمیدیم که خب شما تلفنی میپرسی ما تلفنی جواب میدیم تلگرافمون کجا بود دیگه. عجب خب حالا بفرمایید آیا برنامه برای دیدار با مقامات واتیکان هم دارن ایشون یا خیلی؟ با خیر با دیدار ایشون با این واتیکان چیه ما مخالفات کردیم واقعا. و همین مناسبت قرار شد در حاجیکان دیداری بین ما بایشان حاجیکان صورت بگیره که یک وقت مشکل شرعی پیش نیاد دیگه یعنی حاجیکان چیه دیگه آخه؟ حاجیکان چیه من نفهمیدم. یه ما باقیتا زدیم بغل واتیکان دیگه یه وقت فکر نکنن قلم ما کم میارن پیش ها این همه اسمش رو گذاشتیم حاجیکان عجب باشد منجوغ نو منجوغ نو منجو. سی. سی. چی میگی آقا؟ منجوک چیه؟ بله. چی میگی منجوک یعنی چی؟ بله بله یک سری از جوانان علاقمند ایتالیایی میخواهند اینجا به افتخار ما سرود ملی ایتالیا را اجرا بکنند که ما دیگه سرود ملی ایتالیا؟ باشیدی بله. خیلی خوی ما هم گوش میدیم پس چی شد <تصفح> چی جوریه بگویی؟ منجوک نو منجوک نو منجوک نو, نو بله. تفضل تفضل خب من منجوک نو چیه سرود ملی ایتالیا سی. کاش این تاریوش کن. نیا دی تعطیل با میگه سرود ملی ایتالیا. در مورد پسافرجان باید بگم که همانطور که امام راهل فرمودن هیچ بله خیلی ممنونم خیلی لطفی حال ایشون نظرشون اینجوری بود دیگه نظرشون این بود که هیچ هیچ نظری نداشتن اما خواستم چند تا از این کامنت های شما رو باز بخونم راسی اس رو اس و مثلا حواسم نبود این اس که چندین بار داریم میگیم امروز هم دوباره این اس ام خوندم این اس ها شما فراموش کنید اس ها مدت خاص این دو تا از کار افتاده و اس جدید رو شماره اس های جدید رو به زودی خدمتتون اعلام می کنیم اما برای های اینستاگرام مثلا هامی گفته انقدر اقتصاد مقاومتی داشتیم که الان هیچ توقعی نداریم اونا جیب ما رو نزنن کافیه بله ایشون هم نظره حامی بود در اینستاگرام اما حامد نجابت گفته اگه همه چن برگردم به سال 1390 بشه من دیگه 18 سالم نمیشه با یک چهره گریون این رو نوشته این آرزوی آرزوی 4 سال منم برآورده نمیشه غم و ها و محدودیتیم که تو این 4 سال داشتم برطرف نمیشه فرصتایی هم که دستم رفتن دیگه بر نمیگردن دیگه اشک هم در اومد حامد نامید نباش بابا به فردان نگاه کن دوباره آرزوهای جدید کن خب تو چهار سال آینده مطمئن باش که بالاخره اونام یه جوری برابرده میشه دیگه و قدر این روزا رو میدونی بله قدرشو بدون از زندگی لذت ببر گریه نداره که اما الان خانم آقای اون دختر خانم آقای پسر یه مدتیه که شاید حالا تحت تاثیر برنامه های موفقی مثل مثلا دید در شب رزو رشیدپوره که دستندرکارن صدا و سیما پی به علاقه مخاطب به برنامه های چالشی و بدون رو درباعیسی بردن و رو آوردن به میزگیرد های این شکلیه یعنی شبیه مثلا دید در شب چند روز پیش شبکه دو تو یک برنامه خیلی خیلی خیلی چالشی چند نفر از مدیران و کارشناسان صدا و سیما رو دعوت کرده بود موج برنامهم هم اممچی بیرودر وایسی در مورد زبانم لال دافعه صدا و سیما برای مردم و بیمخاطب بودن برنامه های رادیو تلویزیون دولتی ایران مهمونای برنامه رو به چالش میکشید در این میون صحبت و یا در واقع دفاعیات کارشناس صدا که آقای دکتر هم صداش می‌کردن در مورد حجم انتقاداتی که علیه صدا و سیما در جامعه وجود داره جالب بود. یه بخششو گوش کنیم. بسیار برنامه های ما بیننده داره و این توجه به اتفاقا به نقاط ضعف وجود این همه نقد در واقع داره توجه و علاقه به سازمان صدا و سیما و رادیو تلویزیون رو نشون میده. وجود این همه نقد اولا نشانه علاقه است. دوبما نشانه مسئولیت و احساس مسئولیتی که نسبت به رادیو تلویزیون وجود داره اگر گفته میشه رادیو تلویزیون ملی یعنی رادیو تلویزیون مال مردمه مال گروه های مختلف، اخشار مختلف و این نقد ها از این زاویه هست بله، پس چی شد؟ یعنی اگه مردم اسم صدا و سیما که میاد خیلی هاشون کهیر میزنن و همه شاکی هستن از صدا و سیما علتش چیه؟ جهت داره؟ دروغ میگن؟ نه اینا نیست همه اینا علتش علاقه و توجه مردم به صدا و سیماست بله وگرنه چرا در مورد شبکای محوره اینقدر مردم هرس نمیخورن فش نمیدن؟ پس این مسئله حل شد و دیگه مجری چالشگر برنامه هم قشنگ قانه شد دیگه اما مهمون دیگه این برنامه یکی از خبرنگارهای نام آشنا و اوچار فرانسیسی سدوسیما بود که ما توی ناسیهش داریم میبینیم که تا چند سال دیگه رئیس سدوسیما هم نشه دیگه تا کم مدیر یکی از شبکه‌های تلویزیونی صد درصد میشه ایشون در پاسخ به این سوال که واقعا رسانه ملی آیا رسانه ملی هست یا رسانه ملی اینجوری جواب دادن با بیا صرف نباشید دیگه سداسیمای میلی ملی یعنی ما ارث بابامون که اینجا نیست حقوق میلیونی هم که به ما نمیدن یعنی همون چیزی که مسبب دولت هست کارمندای سداسیما داره میگیرن حالا ما از صبح مییم تا شب شاد یه اضافه کاری بگیریم استرس داریم این از این یعنی ایرس کهسی نیست اینجا که بخواد یه چای نفتی پیدا کرده تو ما داره میزنه ملی دیگه هر کاری جز. نه ما با. در جهت اون منافع ملی ما داریم حرکت میکنیم آیا دکتر تحلیل قشنگ گفتن شاید بعضی از شما بیاید پشت پرده یک خبر رو بدونید اوه, اوه, اوه چه خبره پخششه بهتره خب اینم که حل شد دیگه واقعا بی انصاف بود دیگه یعنی چی میگه رسانه ملی این های خدا همه حقوق بگیرن صدا و سیما عرص کسی که نیست که بخوان میلی رفتار کنن حالا ای میبینین خبر هم اصلا چپن درقیه چی پخش میشه سانسور میشه گفته نمیشه تغییر میکنه و اینا به خاطر اینه که چی؟ اونا میدونن که پشت پرده ی بعضی خبر رو اوه چه خبره و ماها نمیدونیم پشت پرده خبر رو اوه چه خبره به همین سادگی حل شد؟ افتاد؟ بله خوشبختانه توی میزه چالشی همه ی مسائل به همین سادگی عل و فض شد و موجود چغیر و بد بدن برنامه کاملا قانه شد و دیگه معلوم شد که صدا ما مولا درزش نمیره کلن خسته نباشن همه روحانی امروز اومده بود پیش من میگفت پدر من میخوام بمونم رام منقدر منو نفرست برم تهران اونجا همش باید با این خامنه و دارو بریش کل, کل کنم دوگه طاقتم داره تموم میشه اش گفتم مجله نکن اگه مثل اون خاتمیه ممنون خروجت نکردن یه کاری میکنم بعد از رئیس جمهوریت بیای روم تو دفتر خودم خوشحال شد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 بهشیه گیلاس شراب اومر خیام دادم ساخت ایتالیا است باورش نمیشد این شراب ایتالیایی اسمش اومر خیام باشه اش گفتم پدر رو دست کم نگیر پدن پدر دون دکتاتوریون هر کاری بخاط میکنه حالا شراب تو بخورو برا بعد از تو اینو با وقت ملاقات گرفته گفته کار واجب دارم خسته شدم از بس مشکلات اینا رو حل کردم که از دستشون راحت میشم پسر به پرون گیلاس منو پر از یخ کن بذار جلوم با دو تا ندادم از سخف کنن. شما آنها را گرفتید لاکن اینطور نباشد که آنها خودشان خودشان را گرفته باشند اما خوب بسیار کارتون عالی بود بسیار کارتون جالب بود و درست در وقت خودش هم این کار انجام گرفت به اطلاع میرساند با استعانت از پیشگاه امام خامنهای مراسم بزرگداشت داشت پاستاورامن سلحشور توقیف کننده قاویخ های با حضور خامنواده پاستاورامن گرامی و امت سلحشور و همیشه در صحنه در قاویقیه تهران برگزار میگردد گردد شعارهای مراسم هنگام شناعید و تا قاویق به پاب مسیر قویق سپاه نیاوی ای قویق امریکاوی تو آب ما میاوی سپاه چی کارش کرده سراخ سراخش کرده برادر سپاهی چقدر عزیز و ماهی در پایان این مراسم نیز همه هزار می توانند با چفیه های متبرک این برادران غایقیر سپاهی متبرک شوند دفتر پاستاشت رشادت های آوی سپاه پاستاران غایقیه تهران موشت چراق ولی اصنی نیایش برای پرمی صوتی میذارم انتظار من از دوران پسابرجام اینه که تو به جایی که سی تا برنامه دیگه داشته باشی حداقل 300 تا برنامه دیگه داشته باشی به خاطر آخی. که تنها چیزی که باعث میشه من توی ترافیک حسابی نشم و حسلم سر نره گوش کردن به برنامه های تو گربونت گربون خودت ایشالله تو دوران پسابرجام مشکل ترافیکم گفتن قرار حل شه دیگه اینه که جای نگرانی نیست ولی حالا برای احتیاط همیشه گلچینی از برنامه‌های ما رو شما همراتون داشته باشین دیگه وقتی عصبی میشی پلیش کنین نمیشه امتحان کن ببین برنامه تکراری گوش بدی همون, همون قرار تاثیر همونقدر تاثیر مثبت رو ببین رود میذاره. من مطمئنم واقعاً این بعد جواب بده دیگه چون میدونین مهم همون به هر حال صداهای آرامبخشیه که من از خود تولید میکنم واقعاً چقد آرامبخش مرسی از تماس شما خیلی لطف کردین من امیدوارم این مشکلات حل بشه بعد از پس او برجا اما یکی از چیزایی که ما رو در دوران برجام خیلی نگران میکنه اینه که هر وقت تندروها به مصالح و دلایلی که آقاشون تشخیص داده تو سیاست خارجی بازی داده نشدن و نخودی به حساب اومدن چیکار کردن؟ اومدن برای ابراز وجود در داخل کشور جاهایی که خرشون میرفته خودی نشون دادن حالا یا بگیرو به بند را انداختن یا روزنامه تعطیل کردن یا کنسرت هم زدن یا فیتیله اعدامو کشیدن بالا خلاصه به شکلی خواستم بگن که فکر نکنین رفتین با غرب مذاکره کردین یعنی مثلا همه کار مملکتین این مملکت واسماس یعنی کلیش هم واسماس برای همین حالا که برجام به ثمر رسیده و دولت روحانی و تیمش توی فضای گرم و پرشور دارن به ابراز احساسات و مردم جواب میدن آقایون دلواپس هم شروع به هنرنمایی و ارزندام کردن و این هنرنمایی ها فعلا از عرصه سیاست با همین حال رد سلایت ها شروع شده و به زودی وارد عرصه های دیگه هم در غالب ترهای رنگ و بارنگ مقابله با بدهجابی و جمعوری ماهواره و امر به معروف و گلگرفتن درزهای نفوذ در نشریات و اینا هم میشه میگین نه؟ خب ولو سب کنی نگاه کنین دیگه امروز سورا دوستم زنگ زده که شرمین لباس بپوش بیام دنبالت بریم یه عکس برای این آزادیای یواشکی بگیریم بفرستیم گفتم چی میگی تو گفت بابا میای بریم وسط میدون هفته تیر عکس به رو بندازیم آزادیای یواشکی اینا گفتم من که حتما یواشکی هم نیست وسط میدون هفته تیر به اون وسعت بعدم هیچ فکر کردی گشت ارشاد بگیردمون چی میشه گفت یه چی میگیا اینا اقلن تا یه ماهی بعد برجام برای حفظ ظاهرم که شده گشت ارشادا رو جمع میکنن بعد از این فرصت استفاده کرد اون بلوز دامن قرمز و مشکیاتو رو بپوش یه شالم بنداز دور گردنت محض احتیاط که اگه کسی گیر گیرداد بندازی سرت گفتم سورایی تو احیانا چیزی نزدی هایی به نظرم. گفت میای یا خودم برم هی بهونه نیار دیگه گفتم نه قربونت من ترجیح میدم بشینم پشت کامپیوترم بعدن که تو عکسه بد روسری انداختی تو میدون هفت تیر بفرستیم من لایکش کنم والله منو مست می‌کنی منم میگه پیش ما بیا پیش ما بیا پیش ما بیا روز سفری برد سلام فریبرز قریب سلام هستم سلام قربونه چه خبره فریبرز این گزارش فساد بلاست... در فوتبال که دیشب صحبتش کردیم انگار کلی بااستاب داشت داره آره آره همین رو بگم خیلی خبرا بوده امروز فرشیک توی این مورد اجازه بده اول حرفای صاحبش و سخنگوی کمیسیون عرض 90 مجلس رو بشنویم که خودش امروز تو صحنه مجلس اینجوری گفته بشنویم حدود فساد در بچه های زیادی از فوتبال ایران و افزایش آن تا چند سال اخیر غیر قابل این کار بوده و بر اساس اطلاعات مستند مسادیق این معزلات عبارتند از یک توانی دو رشاب و ارتشاب سه دو پینک چهار شرط بندی غیر مجاز پنجر و استفاده از سند مجعوب، شش تستیر نامه های خلاف واقع، هفت فرار مالیاتی، هشت مصرف الکل و روابط نامشرو، نو مصرف مواد مقدر، یازده رواج خرافگرایی، از دوم سهر و جادون، دوازده تحصیل مال از طریق نامشرو، سیزده نغز آشکار قوانین مقررات و چهارده قراردادهای گیرواده. مورد ده رو نگفته یادش رفی چیز دیگه بوده چی بود قضیه؟ آره اون احتمالا خیلی بدتر از بندای دیگه بوده که نگفته. کلیم بیشتر از اون چیزایی بود که ما دیشب گفتیم. خبر آنلاین با اشاره به بخشی از گزارش فسا تو فوتبال نوشته دلالها ها و بازیکنان رو به مجالس لح و لب می بردن و واسه ای استفاده ازشون فیلم میگره. یه بخشی دیگه ضبط در مورد روابط ناسالم تو فوتبال زنان هم تابناک بهش اشاره کرده البته بدون ذکر جوزیات دیگه جزیات نمیتونم بگن دیگه ولی عجب فوتبال خلافی داریم ماه. ها ایشالا دیگه روز هم یه همچین تحقیقی بر نماینده مجلس صورت بگیره ببینیم از اونا چی در میاد آه. آره دقیقا فرشی جان یعنی اگر سر این گزارش یعنی اول این گزارش رو بزنی و فوتبال ارزش برداری مسی گزارش در حالت خیلی خرابکار میشه گزارش کل گزارش آره والله اینجوری که گفتی دقیقاً همجوری بود حالا واکنش خود فوتبالی‌ها چی بوده فریدوس اهالی فوتبال امروز سرشون به مراسم تشییع همایون بهزادی گرم بود که تو امجدیه آخرین دور افتخارشون زد و دلم شد در بهشت آباد فقط علی دایی گفته فساد فوتبال یک هزارم اقتصاد جاهایی دیگه نیست و اضافه کرده مجلس وزارتخانه ها را باید بررسی بکنن بسیار خب حالا از در اومدن انشاءالله جواب دندون شکنی هم به این گزارش میدن همه رو به ازادی هم روح شاد یک بار دیگه ممنونم ازد از فریبورز غریب باید خدافزی میکنیم تا فردا تا فردا خدا نگهدار را اتفاقات حقوق بشری خیلی مهمی که اصلا انقدر چسبیده بود به برجام که میشه به عنوان اولین دستاورد پسا برجام دونستش اما ماجرای آزادی زندانیان سیاسی ایرانی آمریکایی بود که جمهوری اسلامی به مختلف زندانیشون کرده بود چقدرم خوب که اینا آزاد شدن یعنی این همه القاب رو بستن مسئولیم به جیسون رضاییان که وای جاسوس بوده وای برای, برای بیگانگان گان اطلاعات می کرده وای عامل نمی‌دونم وابسته به رو گرفتیم بعد پای برجام که رسید وسط تمام اون های هووا و اینا سه به یک مقدار تبدیل شد رضاییان آزاد شد رفت خدا رو شکر البته چند نفر ایرانی آمریکایی هم توی زندان‌های ها... آمریکا بودن زندانی‌های آمریکا بودن که اونها هم خوب آزاد شدن تا یه فرق خیلی جالبی بین آزادیه. زندانیا بود اونم این که آزادی زندانیا از سوی ایران منجر به این شد که این بنده خداها یه پاداش چند تا دیگه هم قرض دادن بوده بوده از ایران رفتن های ایرانی که آمریکا آزادشون کرد اکثرا از آمریکا تکون هم نخوردن همونجا موندن اصن کلا اینم در به فکر کنم روش مبادله زندانیه که فقط تو دوری پسابرجام دیگه میتونه اتفاق بیفته دیگه و حق چیزای ندیده و نشیده با امروز. با پیش خوب. روزنامه آرمان امروز با اشاره به انتشار خبر دروغین رد سلاحیت سید حسن خمینی در خبرگزاری تسنیم امروز تیتر زده بود که خبرسازی برای تست افکار عمومی خب، نتیجه این تست چی شد؟ افکار عمومی جوری واکنش داد که نتونن رد صلاحیتش کنن یا سید حسن رو رد شده بدونیم کلن روزنامه اعتماد امروز به نقل از قوه قضائیه تز زده بود که بازداشت عامر حمله به سفارت. اون مدیر شبکه‌های شبکه, شبکه ماهواره‌ای که چند روز پیش گرفتن، پس آمر نبود یعنی؟ یعنی چی میتونه باشه نکنه خود این روبرت مرداک رو گرفتن روزنامه ایران به نقل از رئیس مجلس امروز تیتر زده بود که هنوز درهای دیپلماسی به روی عربستان باز است ولش کنیم با مننت نکشین کشور کشوری که باید تشکیل سفارت قرار کنم بهتر که بره ببندین در دیپلماسی رو آقا ببند در رو سوز میاد اه؟ تموم شدیم امشب هم اما هنوز یه شب زمستونی دیگر رو داریم با هم سر میکنیم زمستون هرچند سرده، هرچند گاهی بیرحمه هرچند دلنوازی تابستون و بهار نیستم و شباش عجیب و پر از سهرن شبایی که زود شروع میشن و دیر تموم تا ما رو بیقرار کنن برای خورشید دوباره یه پرتوب نوری که حتی اگه از لابلای عبرها هم بزنه بیرون مهم نیست همه اینا خوبند به خصوص که زمستون باشه و شب باشه و یار باشه و وعده دیدار هم برقرار اون موقع است که به قول شاعر شب آشقان بیدل چه شب دراز باشد شب سرد زمستونیتون گرم و برقرار یه شب سرد زمستون گم شدی تو دلبار رفتی از شهر خیالا دور شدی از من دار تو میری بر نمیاری رفتن باسه همی میشست عکس تا هنوزم اینجا توی خوره روشو میرست تو میری به من حواست نیست من تنخ هستن و یادت من به تو بابسته تر میشم